عنوان کرد که اول زا المخصوصه ایم کنه لا تعدل به زا فاقوه یوزای المثله امید که بعد زا که فائل حب و واضح میشه مخصوص رو بیدید حالا مخصوص درد یا مخصوص رو هر جور که مخصوص باید خدا رو تغییر ندیم بگیت حب و زیدون حب و زیدان حب و زیدون حب و تا آخر لا ترکیب رزا چرا فرق زیرا زیرا فهو و یوزا مثلا زیرا ترکیب حب و ترکیب مشابه و جاری مجرای مثل چطور در مثل ترکیب مشبخون به رو که به جای مشبخ استفاده میکنن و استعاره میارن تغییر نمیدن فسیف زیعه می... ولو این که اون شخصی با نمکنون رو مجازن شکسته بیوفایی که مذکر باشه این تا جمع تغییر دیدن میگن فسیف زیعه شما میکار رو بکنید دارو به همیشه حفظارسی این چیزی بود که تا اینجا فقوبه یوزاهی مشابه رو مثلا الجاری فی كلامه مزدی که جاری است در کلامشون منقوره ماننده این مثلا درست شد فسیف زیت علبن به کسر تا للجمیع به کسر تا میگن برای همه و مشبه رو حالتش رو میکنم می‌کنم مشبهون به رو به جای او استفاده می‌کنم مشبهون که لفظ مستعار باشه هیچ گونه تغییری نمی‌کنه و هازا و هازا ایلتون لعدم تقییر هازا یه یعنی این گفته فهولای و زاهی از مسلا این ایلتون ایلتیست لعدم تقییرهی برای عدم تقییر زا دلیل عدم تقییر زاست ایلت آورده برای این که چرا زا تقییر نمی کنه این با این هازا ایلتون این رو بود جلال بفهم استقرا ہوا مثلا است و نه چیز دیگه لذا گفته هاذا اذن علت اسباب لا تعدل لذا اذن لعدمه تغییر و علل پس علتی رو که ابن چیه این که جاری مجرای میگه ابن کیسان به انر مشاره الی ابن دیگری بر این قضیه سرانار کرده گفته مشاره الیه بزا مفرد و مضاف مخصوص. گفته زا اشاره دارد به مشاره الی اما مشاره الی مضاف به مخصوص بوده هست شده زا مطابق با اون به انر مشاره الی به زا مفرد و مخصوصه قذ و اقیمه قوا یعنی مخصوص مقام بود مضاف عنه مضاف الیه جاش نشسته مثل بس ال قریهه مثل جاء ربک فتقدیر رو میگه بس تقدیر عبارت ما چیه میگه فتقدیر حبزا ویدون تقدیر مثال حبزا هندون حبزا فسل هنده اصل زیبایی که مذکر بوده و مفرد با مطابق هزف شده ماده و همان زاده تابقه میکنه با اون حب بزا حسن و هنده مثلا اگر مثلا گفت لا حب بزا هندون یعنی لا حب بزا خلقه ها خلو هنده خلقه های هند شده حسن و هنده میگیریم مضاف مقدر تا پیش این خول آید ابن ماطی از این به چه دلیل به دلیل اینکه اگر اینجا مضافی در تقدیر باشه یعنی ما اگر بپذیریم که اینجا مضافی در تقدیره واسه این کلام باید بعضی جاهای مضاف چی شه ظاهر شدیم اینکه شما همه جا موقع در تقدیر بگیرید خلاف اصل بکنید این چیه؟ صحت نداره حب بزا هندون حب بزا الهندان حب بزا هندار هر کجا که مطابق نیست ما مجبور مضافت هم و هیچ یک اون مضافت مقدم رو ندیده باشیم یه سرد در سرد خلاف خودش خلاف اصله اگر قرار با مضافی تقدیر باشد این مضاف باید قاعدتا در اکثر جاها ظاهر در بعضی جاهای که ظاهر نشده بود ما چکار تقدیر تا حمله برون اکثر میکردیم حالا یه موردی رو شما ادعا کردی هیچ مورد اصلش و حقیقتش نمیده این قول ابنکیسان به همین تنزاییون مورد پذیرش واقعه و فهمم ممن قولگی و فهمم ممن قولگی و اوله میگه و فهمیده از قول مصنف که گفته و اولزا المخصوصه اینجا آخرگی انا مخصوصه ها لایت قدم و علیه ها میگه از اولیه فعل همدیه حجوری این فهمیده میشه میگه بعض زا مخصوصه قرار بده میگه از این معلوم میشه که چی؟ که دیگه قبل از زا و قبل فعل آورده نمیشه اون دیگه قدم مشعران بهی کفا کلعه ولی موقتناه ولی که در خوندیم قیمه سر در این جایی نیشه در جویه مسئله و او ممن قول هی وله از اخر هی ان مخصوصه حالا یتقدم علیها و میگه اگر شما این استنباض با ملا آیه آیش بکنید ملا جلال میگه این استنبات استنبات چیه؟ حقیقته درست همینطوره و او بک زاری لمزو کرد به خاطر اون چیزی که ذکر شد که چی بود؟ فقوه یزادی المسکن حب ظاهندون جاری مجرای مساله چطور فستیف سیف زغت نمیشه بگیم که زغت و نفس سی فس سی پر اخر کنی ترکیب اصلا همه میخونه هم, هم رسال میشه در امانت و آریه گرم در لفظ شام به هیچ کونه درخون میکنی میگه اینجا هم لمازو که و ابنو بابر شاز آقای ابنو بابر شاز این شخص قال ابنو بابر این شخص عنوان که در یه علم علم از اون مزیدن جاری مشروط و بودن گفته و و گفته چون اگر ما مقدم بگیم زیدن حبذا ممکنه یک نفر این طور ترکیب کنه بگه زید مدا حبب ف ماظور این جمله خبر و زمیر داخل حبه برگرده میگه برای خاطر اینکه این ترکیب اینه کسی نیاد ما هیچ مواضیع حبه کردیم اولا این در صورتی هست صورتی هست ما چی بیاریم نه بگیم حبه ظ ولی اگر حبان بشه از اکر باشه اتباس پیش میاد یا حب بزایی باشه یا از بزایی دان باشه یا بعد یک صورتش ممکنه اتباس بعد ثانیه لازمه گرفتنش هم دا نده میدنیم این قول و لسبت جایه ابن باز لالله نفی حبه وذا مسئولان و ما سوا ذا عرف به هر او فجور بدباونزا انزما بولها دخل علتش مخصوص شده باب باب عاطفه و اوله الان و ما از جای وران ما مفعول به عرفت زمیر انتر عرفت به حبت رفت بده با فعل حبت که شما زار رفت میدارد میگه حالا رفت بده با حبت ما مفعولی را ما مخبوله. یعنی چیزی را سه چیزی را که استقرار استقرار پیدا کرده غیر زاست اینه آنچه که غیر زاست آنچه غیر زاست تا زا رفت بده با حفت یعنی حفت میتونه اسم ظاهره زیب را کنه رفت بده با عنوان تاهیم و مخبول زا ارفت به حبه. او فجور با او اوئے عاطفه باز زائد است بعد در نمیدونه باز زائد است جررت ضمیر اندر به جای ارفع بلبا متعرب جررت اولو جرره هم افتاده یعنی جرره ماسقا زو با جرب زار به وسیله با یعنی فاعل حب دو شکل دیگه هم میتونه بیاد چی میتونه بیاد یکی بگیم حب ازیدون یکی بگیم حب این دوتا هم رسید غیر از را او فجر و با نقطه صفر و با با استینافی است دون زا اگر زا نباشد یعنی فاعلش زا نباشه حالا فایلش یا مرفوع شده باشه یا مجروره به باید زاید مثل کفا بلده شهید ها بلبا بلباید زاید و دونزا به دونزا به معامل های کس را. اگر زا فایل نیست های خبرو و مزمون بید چیه؟ بخونید خوب ببید زیدون یا خوب ببیدید به زیدون یعنی میتونید مفتور بخونید بخونید هبه زیدون هبه بزیده میتونیدن بخونید چی؟ بزیدون بزیده ما کدومش بهتره بزیده که اصلش حبوبه بوده دیگه اصلش حبوبه فعاله بوده جایز ما اول ساکن در ثانی ادغام کنیم ایشو هبه جایز هم از زنبه ما قبل و بعد کار کنیم؟ ادغام کنیم بشه چی؟ ازمان ملائه مبتدا کشفر زمیر زمیر ازمان فائلش خبر دونزا ها برای فائل کست یعنی هم گرفتن ها مزموم شدن ها نسوره این زمه گرفتن در حالی که دونزا در همراه زاب این زمه گرفتن نسوره اما در حالی که همراه با زاب نباشه به چیزی بیگه باشه <تصفيق> یا شعری خود در قرآن اسمه لعه و بهی بده اینا ولو عبدنا غیرهو بگیر شغه اینا فهب بزا ربن این الان تبقایده زا شده فایلش حب بزا فایلش ربن تمیز یه حب بزا ربن حاضر رب دراب گنا مخصوص مخصوص ما تشکیل شد و حدی نه که از زالش شده نرسید اینا بخون میشه کن حب بخو حب بچیه و حب ب دینه دینه تمیزشه افسر یعنی حب ب میتونست اینجا مکنش اون مکنش رو به وسیله جردم بیاره و حب بی بگید و حب دینن بیایی کنیم و ما سو ز زا. زا اینجا اسم است برای حفظا خود انا اسم اشاره این نیست آنچه غیر از این است بگو آنچه غیر از زا است زا این اسم است برای اون زای حفظا زا. لفظ رو گذاشت و ما سوال لفظ زا اینجا برای حفظ لفظش بده به حفظ زا بقیه حفظه بود که باقا بشه برگشه کناور چی رو الان نهو فاقای رو بنابرای که فاقای داره حب زیدون جلن الان میگیم حب چی زید فاقایلش جلن تمیز یعنی چه نیمه از جهت مرد اینجا می کبه هم بخانیم زه هست زیدون او جرل بر بار زایده یا چه بده بر رو به بار زایده نهو مثال فقوتو او خوتو علكم بهزاجه ها و حربها بها اینا پختن اینا توفن اینو این حبره حبه, حبه باید شده قولن به ها حبه وزن به به هم چیه است دیگه و هر در موقعی که فاعل زا نباشه چیه؟ اگه فاعلش فایل چه چیز؟ فقط فاعل زا حد بسات. یه حبزا گفته نمی‌شه. حد بس. فَقُد شعر مله شو اروین مسیحی دوران امویه است بنی امیه به اسم اختر. میگه فَقُد میگه من گفتم اوق و طلوها اوق و به خندره. خ معص است. اوق تو رو و قط لول یعنی م جو ها به ما قطل خمررتتل تول خته یعنی م ها به ما یعنی ما آب چیکار کردم؟ بیشتر ختنند نمیشه بخور این رو باقاتی می تا اینکه هم بیشتر همی در اونها دیر همه اطلوها از جه به خمده به ماه سوزش و اونجو برمی داشته و هدهش رو کم میکرده میتونستم بیشتر دو مستی درشون در نفسی میگه قلت و اقتلوها یعنی مزدجو انکم به مزاج انکم و به مزاج بلده به اقتلو میگه گفتم پیش خود این خمد رو با آب چه بکنی؟ مخلوطش کنی بسازیمش اینو گفت بعد میگه مده کردم اون خم رو گفتم و حبه به ها و چقدر خوب است این خم حبه به ها فایلشه و حبه به ها و چه خوب است این خم مقتولتن حال است از برای خال. در حالی که بگی مقتولت است یه یعنی چی ممزوجتن به ماهه هینا توختلو هینا توختلو متعلق به حب است یا حب است یعنی چه دوست داشتنی است این خمر هینا تختلو یعنی اینا تومزجو موقع مخلوط میشه مقذولتن در حالی که مخلوط شده است ممزوج است حش زیاد داره هینا توختلو مقذولتن در واقع یک شکل هینا متعلق است به حب توختلو مضاف الیه فیلونه های فائل میخوده به خمد مضافان این هینا هست اینه رو میتونیم چکار کنیم؟ مبدی برفتش کنیم؟ میتونیم منصوب بخوانیم ولی منصوب خوندنش چیه؟ بهتره گفت بختر بنا مطلوب به فیل بنا هینا متعلقه به با به ها فائلش باش با اجازه زایده مطولتن حال از برای فقط دو رو غائن گن به مزاج ها و حبده ها مقولتاً نه توفت و دونا وجود زاب بدون اینکه زاب وجود داشته باشه انضمام الملها زمه گرفتن ها به زمت المقولته منن عین به زمه که نخر شده از عین یعنی ابواب بوده زمره دادیم به ماغت داد اولی ساکن شده در دومی ادغامش کردیم شده چی خب چه کل بیت ثابقه ذمه دادن خیلی زیاده مثل بیته سابق همین بیتی که شما دیدید خب بعدها مخدولتان دینه دکتر اگرچه هم در این روایت رسیده یعنی در این روایت کرد در اون بیت سابق و حبدینن فتحش رسیده و فتحه ها نداره، و فتحه بدی چیه؟ کنه دخولید هبه ده ها مفتولت هم مثل ما دینه و فتحه ها نداره که مثل قول این شاعه و هبه دینه که قبلا امید فتحه داده قول نادره و معذاب اما اگه هبه همراه زا باشه چی؟ وجبل فتحه فتحه چیه؟ واجهه خوب بحث نمه و به سر رو مطالعه میکنید بعد اگر مشکلی دوش بود میگید رو ما هم برمیگردیم اون مطلب رو هستم بریم سر بحث افعال و تفضیح حاضر باب و افعال تفضیح این باب بابه افعال و تفزیر. چند تا نکته میگم تو ذهنتون داشته باشید یا کنار مطلبتون بنویسید که برای مدخله به این باب. اولا افعال و تفضیل اولا افعال تفضیل عنوانیه در اصطلاح نهلی ها برای هر وصفی که دلالت بر زیاده بکنه هر وصفی که تریت رو به رسوله بهش میگن افعال و تفضیل یعنی افعالی که دلالت بر تریت میکنه حالا خواب اون تریتی که دلالت میکنه در صفتی باشه که فضل و کمال محسوب میشه مثل چی؟ عالم، افقه اجمل احسن یعنی واقعا افعل و تفضیح میگیم یعنی افعلی که دلالت بر تریعت میکنه این منظورمونه نه افعلی که دلالت بر فضل میکنه در مقابل افعلی که صفت مشبر هست مثل احمر و همراه اما و امگاه اون دلالت را سبوت میکنه صفت مشبه است این دلالت بعد طریعت میکنه حالا خواه اون هم همراه با فضل هم باشه فضل و کمان مثل اعلم و افقه و, و اجمل و احسن و اینا یا نه زیادش در صفتی باشه که دلالت بر ایو نقصان میکنه مثل اقبه یعنی چی؟ زشتر اجهل جاهلتن اسوأ بدتر پس بنابراین افعال و تفضیل اگر گفتیم یه موقع به ما گفتن افعال و تفضیل میگیم برای گفتم بس اغبه چه تفضیلی داره چه فضیلتی داره میگیم افعال و تفضیل یعنی افعالی که ماله تریته نه ماله فضل کمان این نکته افر. نکته دوم اونی که دلالت میکنه برش تریت هفتاد هشتاد درصد تریت در فائل مثل اعلم یعنی چی؟ عالمتر افقه یعنی فقیهتر افضل یعنی فازلتر مشخصه دلالت بعد فائلیتی دارد که همراه با تره. یعنی معنای زیاده فائل رو به همراه ترییت میفهمونی و یه 20 درصدی کمتر مفعول رو به همراه ترییت میفهمونی مثلا میگیم الوم یعنی ملامت شده تر اشهر یعنی چی؟ مشهور تر یعنی معروف تر نرسه؟ پس 80 درصد اسم فائل میاریم به اضافه تر یه 20 درصدی اسم مفعول میاریم به اضافه تر و اگر شما میبینید افعال رو اضافه کردن به سوی تفضیل برای چی اضافه کردن؟ برای اینکه با صفت مشبه مشتبه نشه. چون یه افعال دیگر هم داریم که مهندسش فهلاه اون تریگر تفضیل نداره بلکه دلالت میکنه فقط بر چی؟ بر سبو نکته بعدی اینه اگر ما افعال رو تفضیل میکیم اصلشو در نظر گرفتیم بعضی موقع ها ممکنه افعال وزنش به هم بخوره مثل خیروشن خیروشن اصلشون چی بوده؟ اخیر و اشر یعنی بهتر و بدتر ولی به خاطر کسرت استعمال خیر و شر همزه چی شده؟ هست شد مثل همزه مثل دارمان رایی به خاطر کسرت استعمال هست میشه نکته بعدی اینه که اگر ما افعال و تفضیل داریم وصفیت دارد چون دریت رو میفهمونه به انزما به وزن فیل اون هم وزن فعلی که مختص نیست لذا با همزه اول اومده وزن فعله دیگه وزن فعل و وصفیت باعث میشه که این چی بشه؟ غیر منصرف بشه میگیم انتا افضل و منی اعلم و مننی. ولی اگر یک موقع وزنش به هم خورد شد مثل خیر و شب همزه عظف شد دیگه غیر منصرف نیست تبدیل میشه به چی؟ منصرف میگیم انت خیرون منید انت شنون من منید درست شد؟ طبقه اینکه دیگه وزنفه نیست فقط وزفیته و یک سبب هم کاری نمی کنید این که در نظر گرفته میگاه کنید حاضر باب و افعال این بابیه که برای بنا می کنیم اما افعالی که افعال تعجب نیست افعاله صفت مشبهه که دلالت, نیز که دلالت بر سبوت هم بکنه نیست. اولی که دلالت بر تلیت بده. نکته ایرم که باز اینجا باعث داشته باشید اینه که اسم فاعل و اسم مفعول خیلی شباهت دارن به چی؟ به شباهت بارایی دارن به ف. صفت مشبهه شباهت رسونده بود به اسم فاعل، لذا شباهتش چی بود؟ ضعیف بود به ف. عمل هاشون هم دیدیم فرق می کن. اسم فاید مطلق عمل می اما صفت مشبهه عملش چی بود؟ ضعیف بود این عملش در بود چون عملش برگی بود لذا اگه معمولش مقدم بیشد دیگه عمل نمی کرد. اگه محضوف بود دیگه عمل نمی کرد افعال هم چون تریت دارد تریت برتری رو میرسونه رسونه تفضیل رو میرسونه. و این طریعت در هیچ فیلی نیست لذا پس بنابراین افعال و از فعل چی شده؟ دور شده برای همین افعل افعال و هم در عمل بسیار ضعیف است مثلا مفهول رو نمیتونه توش عمل کنه ولی این از فیل متعدی گرفته شده باشه مثل عالم. ولی مفهول به رو درش عمل نمی فایل اسم ظاهر بر نمیداره چرا جون اجازه این که شبیه به فعل بشه رو نمید. مشخص این حال در نظر گرفتید به عنوان اون مقدمه که گفتیم که برسید به ساعت کتاب حالا بخونید حاضر باب و افعل تفصیل سو من مسوغ من حل تحجب افعل تفصیل و ابر الاز او سو فعل امره بساز ساقه یه سوغ و صبح. بساز من مسوغن از آنچه که ساخته شد یعنی من فعل مسوغن من حول تحجب بساز از فعلی که ساخته شد از او برای بگید تحجب بساز از فعلی که ما دونستیم ای بسازیم از برای تحجب بساز چی رو؟ افلا سوغ منصوبه متعلق به صغ من هو متعلق به مسلوب لتعجب متعلق به مسلوب یعنی صغ من فعل مسلوب من هو و مر به چی به موصوف مسلوب به موصوف یادتونه خوندیم و من الناس و دواب به ولان آمه مختلفان حلوان رو حلوان رو خوش به کی بر میگه به سنفان خلقان مختلفان حلوان اینم همینطوره یعنی سوق منفهن مسوق منحول تحجیب افعلا افعلا مفغول سوق افعلا لتفضیل لتفضیل ماسکوله سور. So. و ابا علّاز قبیل، و ابا ماب آتفر، و ابا آبا یا آبا فر. لامبرش میشه چی؟ ای ابا میشه ای با. علّاز لغتی استار علّازی. لغتی استار اللذی مفعول یعنی امتنه اللذی، او بیار، او بیافه زمیر نایب فعالش که بر به ل ولذی آید سلبه مسول. ل تفضیل هم متعلق است به سو، از عبارت ما ترجمه شیم بساز افعال را مفعول. بساز افعال را برای چی ل تفضیل؟ برای تریعد از چی بسازم منفعله از فعلی چه نوع فعلی مسوق الملوله تعجبه فعلی که ساخته شده است از او سیغه سازی شده است از او برای تعجب از فعلی که سیغه سازی شده برای او برای تعجب از او شما از او افعل رو برای تفسیل کار کن بساز وعدا و امتنا کن نساز و اباینی بلا تصور نساز علاز اونی را که آبیا امتناع کرده است از ساختن تعجب از او، اونی که ساختن عقل تعجب از او ممتنع شده، اینجا هم عقل تفسیر و از او بگو نساز. این شرایط ما که کنم بعد فعل باشه، سلاسی باشه، مجردات باشه، قابل فضل باشه، منفی نباشه، مجهول نباشه. یه تناسبی؟ پێجای سوق من فعلن ضمیر رو منهو رو میخواد بگه که برمیگرده به موصوف مرکب مثلا من ناس و الدواب به ولانعام مختلفون سوق من فعل مسوق منهو صيغه تو ساخته شده است از او صيغه ای برای ترجمه اصل لد بذاس عه از بالا نه رو مثال هازا عبد ظلم ان زیدن و اعلم من هازا ها اف ظلم ان زیدن و اعلم من ها. دو تا مثال زد خاص بگی میتونه این فعل فعل لازم باشه میتونه فعل متعدی باشه فرقی نه. اولی از فعل لازم ساخته شده افضل دومی از فعله متحده و ابد و امتناه کن ان یسوق ان یسوق افعله لتفضیل منال لذی او بیستا و قد تعجبه و امتناه کن از اینکه که ساخته شود برای لتفضیل از اون چیزی که ابا کرده قبول نکرده ساخته شدن تحجب را از اون وعبه ان یسوق افقاله تفسیر یا ان یسوق افقاله تفسیر و قایبتا یسوق های فیده باشه یا اگه یسوق هست باید باشه یعنی وعبه ان تسوق تفسیر رو بکنیم تسوق و امتناه کن وعبه انتسوغ و امتناه کن اینکه بسازی قبول نکن وعده یعنی لا تقبل قبول نکن انتسوغ و افعال لتفصیل این که بسازی افعال رو برا تفصیل افعال رو بسازی برای تفصیل در چی؟ من او بیاسه او خود تحجبه از فیلی که ایبا شده ساختن افعال تحجب نتیجه میگه فلا تسوخ اگر وقتی یککیو شرایط که بگه میگه پس دل نتیجه فلات و من غیر فعله پس از غیر فعل نسا چون شرط اولش اینه که فعل باشه ولام من زائده علا ثلاثه یعنی و همچنین نسا من فعل زائد از فعلی که زائد علا ثلاثه احرفه زائد از فعلی که بیشتره نصف. اله آخر ما تبطن. تا آخر آنجه که گذشت که حتما باید متصرف باشه تام باشه قابل فضل باشه منفی نباشه مجبور میگیم پس بعضی موارد ما دیدیم که برخلاف اومده میگه مثل همونجاست دیگه شازدست میگه شازد یعنی غیر قابل قیاس ولا یوهاست و شزد حوه اقمنو به کذا حوه اقمنو به کذا مثلا من کرد من داشته دیگه اقلال تفصیل با او شایسته تر از به کذا یعنی مثلا به نجاح به قبول شدن من کرد میگم حوه اقمنو به نجاحه من کرد او شایسته تر از به قبول شدن از خب هم ابتدا اغمنو خبرش به کذا متعلقه به اغمن منکرم؟ متعلقه به اغمن اغمن از چی گرفته شده؟ از قمین و قمن این دوتا اسمن به معنای شایسته مستحق اما فعل ازشون ما بگید؟ نداریم به معنای اجدر است ولی از اجدر فیل داریم اما از اغمن نه قمین و قمن یعنی شایسته و اخ سرومنهو میگم غازر کتاب اخ سرومنهو این کتاب مختصرتر است از اون یکی قلاصه تر است از اون یکی این از چی گرفته شده؟ از اختصره او تو سره هم مجبوله هم مزیده هازا اخسر رو یا میگم هازا عبیز و منال این سفیدتر است از شیر هازا عبیز و منال این از شیر هم سفیدتره عبیز مشکلش چیه؟ اینکه که بروزن افعال صفت مشفهه ساختشون تو سمبیه میگم احمق و منحبن نقه شارسون احمق من منحبن که مثل همین اب و منم میگم خب حالا فعلهایی که ما نمیتونیم ازش افعال تفضیل بسازیم چه بکنیم با, با اینها؟ چه بکنیم با, با اینها؟ میگه اون کاری رو که تو بابه تعجب میکردی فیل کمکی بیان و ما بهی الا تعجب و سل لیمانه این بهی الا تفضیل سل بهی الا تفضیل سل و ما واقع به آتفه جفتش متعلقه به است بهیم و اینا کهش متعلقه به است و بهیم ناید و هست این چیه؟ جا رو مجروری اگه جا رو مجرور ناید و فاید باشه بشه اون از سم اول دست اول دست از و مولاوی که کانه هم و پس او داتون مشتوله به مختلف نمیشه بهی اولا تحجبه گسره لیمانه لیمانه متعلقه به گسره آنچه که به او ترسل میشه برای ساختن تحجب چرا به او ترسل میشه لیمانه به خاطر که اجازه نمیداد. نمیدارد از خود فهم رو سازیم فتاته مانه نمیاندیم به اون تشخص میکردیم به اون توسط میکردیم بهی به همون بلد تفضیل سر بهی متعنق است به سل بلد تفضیل هم متعنق است به سر این جمله بهی بلد تفضیل سر خبر بشه برای ما دارد خبر بشه برای ما و آید بهی برمیدار به ما بشه آهد سبه آهد خبر به مقتدار اگر ما ما رو گرفتیم مقتدار بهی علا تفضیل سل شد خبرش به خبر اینشاری وارد شده که خیلی خوب قاضی رو میگم به تشخیص اول گیره یعنی تعمدن فيه بازوا هم قدرت نکنه در صوریام زاد میتونیم دیگه نمیتونیم چی بگیریم خاطفه بگیریم واچی بگیریم واقعه استیلاف بدیم چون جلبه میشه جلبه اسمیه میشه جلبه فرایگیه اون قضیه صروف بده بعدا جلبه نشه اصل این ترکیب ترجیح مقبولی نیست پچه مکنیم میکیم بیارونیم مثل زیدان عمر رو بهی ترکیب کن زیدن اون بهی زیدان رو منصوب میکنیم به چی؟ به یه فیاد مقدر که عمر رو شده به بهی و همه خلصه در اون مشخص؟ حالا ما رو هم رو مفعول بگیریم برای یه چی؟ یه سر مقدر یه منصوب به نظر خافر برای یه سر مقدر یا اگه سر رو میخواییم بگیم منصوب به نظر خافر به چه زیدن اون رو بگیری؟ زیدن رو منصوب میکنیم به چی؟ به یه جاوز یعنی جاوز زیدن عمر. رو برای این هم یه فیل تبدیل میگیریم فیلی که بتونه این رو برده رو به من مفعول پس ما ر برای یه سره مقدر به قدیه سر که مشغول شده به بگیم یا میگه ما محسوب به از اخافز و یه سر مقدر برای یه سره نمیگیم هم جمعه این خبر روحه نمیشه و همین که ما به ما به اسطینا نمیشه ما باب ما میشه ما به آتیه چی گفت گفت آنچه که به وسیعه اون به سوی تحجب توسر می شود به خاطر به همون چیز به سوی تبصیل شما چرا کنید توسر کنید در اون تبصیل هم به همون توسر کنید این دیگر آن زمان به هی این ها تحجبه این من بیان مانه میکنه آنچه که به اون تبصیل می شود چی بود من عشقا و ماجره مجرح. از عشق به که جایی مجرایه؟ عشق دست اکثر ازن بهی ادت تفضیل سه به به خاطر مانه با همون بسور افر و تفضیل با همون در سوق و به خاطر مانه وقته به مستقی فیل اونجا اگر باشه مثلا از اینگه ها یا همره که نمیتونستیم اول تحجیب سازیم میگفتیم چی؟ ما عشق تا همره تا بود و همره میشه چی مفهول همره منصوب یا میگفتیم عشق به همره ای. اینجا بعده به مستر فیل المفهن سرقه منو بعده هون منصوب هم اما علاقه هم نیست اینجا منصوب میشه بنابرای مفهول همره یا مجرور میشه اشت به اونده دیی برای سیده وای عربجر بذاره اما اینجا چی؟ منصوب میشه علا؟ تمیز. در اون منصوبه علا؟ تنگیزه نه بود حاضر مباکنی. حاضر اشت احمرارن لنه دنه در اینجا سلاسی بوده احمرار تازه مبتده عشق دو خبرش از این از بفادی کرده این برانا تمیز مندن متعلقه به عشق احوال تفزیر با من در اما احوال تفزیر کمکی اونجا اون چه که منصور میشه میشه مقروبا بره اینجا میشه چی؟ تمیز بازا عشد و افناران نردن به تمیز از داره نسبت عشد به فعاله کنگش به زمین رو برای مستطقی که برمیگرده به بازا و الله. آقا مهرم از اونست که میشه